بحث به, به مناسبت اصول عملیه در بیان نسبت بین امارات و اصول عملیه از یک طرف در اصول عملیه بعض حال به بعض مثل اصول تنزیلی نسبت به اصول غیر تنزیلی و كذلك اصول تنزیلی بعض حال به بعض عرض کرد مرحوم محقق عراقی این بحث ها به این صورت لطیفش در حوزه های ما شهرتش بیشتر از زمان شیخ انصاری قبل از هم بود و از ارز کردم این نحوی بحث از اختصاصات حدیث مت... اصول متاخر شیعه اصولاً در مسادر قدیم از اهل سنت یا شیعه نصبت بین اینها رو تخصیص میگنیسند ازا خیر راحت بود بعد از پیدا شدن این که ما حکومتی داریم ورودی داریم این احتمال آمد که نسبت مثلا امارات با اصول ورود باشه فرض کنید یا مثلا تخصیص حکومت باشه و یا تخصیص و ها کذا بقیه که صحبت شد ما تا اینجا صحبت های مردم محقق اراقی رو خوندیم سر تقریبا به استثناء مدار صحبت ایشان کلمات ایشان رو بین الفاظ خوندیم و نتیجه خلاصه بحث ایشان در تمام موارد ایشان قائل به حکومت هست چه امارات نسبت به اصول چه اصول تنزیلی نسبت به اصول غیر تنزیلی و چه در خود بین اصول تنزیلی قائل بودن به مسئله حکومت از کردیم همین مبنا هم تقریبا مبناه استاده حالا من امارات در اصول چیزه هم نیست که ایشون وروزه هم, هم حکومت قائل نشد مثل مرمومن هایین و دیگر. ارز کنم که این و خلاصه تمام این بحث ها به اینجا رسید که به تصورشون حجیت دار مدار کشفه اگر کاشف تام بود حجیت تام, بود حجیت تام بود یا به اول آن ذاتیه و اگر حجت نابس بود شاره باید تصرفی اون کشف رو تام میکنه به این معنا که شک رو برمیداره اگر شک رو برداشت پس اصول عملی جاری نمیشن چون موضوع اوناها شک این خلاصه نظر یعنی با یک تصرف شاره شک رو چون ازاله شک می‌کنه که از قریم در اون حدیث هم هست لیست در اهل مبابینا از تشکیفی ما یعوی هم ازاله شک میکنه سر حکومت رو نیمیدان و اما حکومت تنزیلی و غیر تنزیلی هم شبیه هم چون در اصول تنظیبی وقتی که این این حال تصابه رو بگیر و شک نداری نسبت به اصول غیر تنظیبی که درش مفهوم و شکه باز اونم بر میداره مثلا اصابات عدم تسکیه میگه حیوان نیدونی تسکیه شده نه پس اصل عدم تسکیه است. اگر گفت به خاطر لا تنقاض یقینه به شک با این شکیه که تسکیه میکنی دست از یقین بر نداره پس او گفت عدم تسکیه و اون رو کلش کلوش این،, این لکه حلال حتی تعرف و حرام اون در اینه اینجا دیگه نمیاد چرا؟ چون گفت حتی تعرفه اینجا عرف نا به بود یعنی نسبت بین اساطر حل و اساطر انده تزکیه هم نسبت حکومته خلاصه بحثی مرحوم آزیار رو مرحوم اونستاد چرا؟ چون شما یک گوشی در بیابان فرض کلامی پیلار بکنی شک بکنی که های حلال یا نه خب میگه در اله میگه حلال در اساطالهر تسکیه میگه حرام آیام و لذا گفتیم که صابرین میگهتن اله تخصیص خورده در اینجا اینجا اساطالهر جانی میشه علمای متاخر ما آمودن در تفسیر قانونی میگفتن نه این تخصیص نیست این اسم دیگری داره به نام حکومت و اون معناش اینه که شارع میاد یه تصرف میکنه نمیگی کلوش این لکه حلال حتی تع اگر عمر شما لاتن غزلی آخرین به شهر میگی که این سابقا غیر مذکر بود الان هم غیر مذکره است و اون یقین به امطریهن صادران پس این حتی تعرف پیدا شد عرفنا الله غیر مذکرا لكن ده تعارف لذا نسبتی که در اینجا پیدا میشه نسبت حکومته نه نسبت تخصیص این راجع به این قسمت راجع به اصول تنزیلی بعضی‌ها به بعض هم همین کلامه عیناً همین کلامه و اون این که اگر گفت مثلا در حال شکلی در رکو استس هم یه رکو انجام ندادی لاتن بزرگی این روشه قاعدتا تجاوز میکنه از جوستوهو فش جوستوهو فشک روکلی سو بشه اینجوری تو شک نداری وقتی گفت شک نداری پس لاتن بزرگی این روشه گرون نمیشه. باشه لاتن چون لاتن بزرگی این اینجوری شک نداری از سر. نسبت بین لا تنبازل یقینه به شک با نسبت شک و کلیسه به شک و حکومت میدونن ولکه مشهور بین اصولی نهر سنت بلکه زهانه اتفاقی باشه فکر مخالف باشه نسبت بین این دوتا رو تخصیص میدونن لا تنبازل یقینه به شک الا در جایی که جسته و فشک و کلیسه یعنی تخصیص میدونن این راجع به این نحوه نسبت بین امارات و اصول اصول تنزیلی و غیر تنزیلی اصول تنزیلی و از آمروه هست پس در تمام اینها مرحوم محقق اراقی و مثل مرحوم مستق قائل هستن به مسئله حکومت به همین تفسیری که این دو سلوزه ازشون خود بیم و مجمعش هم امروز روز خدمتونه کرد و اما تو جوابه جواب که نظری که خود ما توی مسئله داریم اولا راجع به این حدیث، اولا راجع به مسئله حجیت امارات یه بحث قانونی ما داریم یه بحثی هم که به استناد روایات مثل همونجه گرانزه که در بحث قانونی رو مفسر گذاشت ما ارس این, این که حجیت برگرده به کاشه و روشن روشنی نداره ظاهرا که خلطی خوده بین حجیت به معنای انفعال انسان نصف به علمش شده بین حجیت به مفهوم اجتماعی یک طریبه اجتماعی. مفهوم شما میگید مثلا اگر من ایم پیدا کردم مثلا این تلاب ماره این داره حرکت میکنه ماره فرار میکنه این محوصه انه حجیت در اصول این نیست این اشتباه کار ظاهران در اینجا مبدع اشتباه در اینجاست حجیتی که در اصول میشه مایخته جبه ترفان مولا بر عبد عبد بر مولا و این یک پدیده است اگر قانون نباشه هستم حجیت من نداره لحوی اگر شما در یک گوشه صحبا زندگی بکنید، یه حجیت به این معنا برای شما معنا نداره اون که شما میمیم مثلا نماز میکنیم چون باز بین حجیت بین شما و خدا هست مراد ما کسی سیفت کنیم اعتقاد نداشت چی؟ و تنها زندگی میکنیم تنها طبعا حجیت اون حجیت به معنای عمل برطوره برط اون در حالت فردی هست اصلا وقتی به این جب نذاره ظاهرا بین این دو مفهوم احتمالا که از وضع عبارتشه خ درشاابت همین چون یک لوممال عمل الاط داره دا اون چون این بحث گذشته که یه اینجا پایده نداره. احتیاط پس یه بحثی نیست که حجیت جیت تابع کاشفیت اثر خیلی یک پدیده اجتماعی است در پدیده های اجتماعی طبیعتا به طور طبیعی نظر به حالت اجتماعی به طور طبیعی اگر میگن قول قاضی نه نمی خاطر یک پدیده فردی که کاشفه تامنه کاری به کاشفیت دارم درسته قاضیت رو قانون حکم میکنه کلام قاضی کاشفه لیکن نظرشون وقتی جعل حجیت میکنن روی کاشفیت اون رو نگاه نمی کنه. نظرشون رو مسئله مسلحت جامعه و اینکه در جامعه اختلاف نباشه و هلام جرام هر کدوم در موارد خودش فرست که مثلا اگه به قول احل خبره مراجعه میکنن، حالا م به حساب بالا در درجه احتماله و اضافه بر اون سهولت حد در جامعه چون اگه مثلا هر کسی به تنهایی مراجعه کنه و از جامعه به هم می‌خوره لذا در هر چیزی که شما حجیت مهم تصور بکنید باید برگشتش به یک نوع حالت اجتماعی باشه نکته اونه نه نکته بازرس کاشفیه بله کاشفیت زمینه حجیت درسته ولذا سعی می‌کنن قاضی خبیری پیدا بکنن این زمینه حجیت این قبوله قاله بحث نیست لیکن حجیت فقط دنبال کشف نیست و اصولا معنای نداره که کاشف رو تام بکنه لذا عرض کردیم اده حجیت و معنی ترجیز و تعذیر میدونم میگن حتی اگر این که الان بحث ما در مقام معنی بیشه. حتی در مقام لفظی اگر گفت من این کاشف رو تام قرار دادن شما شک نکنید مثلا گفت اگر قاضی چیزی گفت شما شک نکنید یا اگر فقیر چیزی شک نکنه حتی اگر تعبیر کرد که شک نکنی مراد جدی تنجیز و تعذیره دقت میکنم کسانی که حجیت رو مثل کفایه و کسانی که حجیت رو تنجیز و تعذیر میدونن میگن شما هر تعبیرم به کار برده مراد جدی تنجیز و تعذیره اون مراد واقعی تنجیز و تعذیره. در کفایه هم میشون داره دیگران دیگران بعد از دارن اینا تنجیز و تعذیر میدن جعل منجزیه و المعذریه و اینم توضیحش گذشته که حق این است تنجیز و تعذیر انتزاع میشه از جعل حجیت خود حجیت نیست پس این مبانی کسانی که تنجیز و تعذیرم گرفتن این معنا هم درست نیست اصلاً این شاید مشهور پیش اهل سنت معنای حجیت رو جعل بدل یا جعل حکم گرفتن که اون هم سری مشکل داره اونم با مشکل برخورد میکنه حالا با نیم اشاره اجمالی به مبانی حجیت کردیم خیلی مختصم لذا به ذهن ما در حجیت چون یک پدیده است، به اصطلاح اون دیرگاه اصلی به جامعه است. و لذا هم کردیم مثلا خبر واحد که کاشف من منبان مثال، خبر صرفه که آقای خوبی فرن سیره اغلا هست این سری اغرا در وقتی درسته که اگر با جید نگن جامعه به هم بخوره اختلال رازم طبیعتش اینه تا اخ... و اگر ما به خبر استقه عمل نکنیم پس کنیم به شواهد عمل بکنیم خبر استقه رو فرس این جامعه به هم نمی چیزی در جامعه ایجاد نمیشه مشهد. بله اگر ما قرص و حجت ندونیم که در همین جامعه طبیعی ما قرط رو حجت ندونیم واقعا جامعه به هم میکنه زندگی. مثلا ما درباب قول قاضی قول قاضی رو حجت ندونیم مگه اینکه مفید قرط باشه مثلا واقعا جامعه به هم چون قاضی حکم میکنیم خیال میگه میکنی من علم برم باز بازی که دیگه ما حکم میکنیم که میکنی من پیدانشون همینطور اختلاف برقرار خود قرط هم در جوامع ما به خاطر وضع موجود ما اینطوره اگر قرط حجت نباشه نهایتش این اختیار تام معذوره بعد بله، معذوریت توش داره اما اون نکته اساسیش اختلال نظامه. نظامی بنازا اکثر این چون مساله عقلی نیست اشتباه نشه این حجیت قدم عقلی اونم که از در یک جامعه حجت قدم قبول نکنه جامعه فیشت علمی باشه بگیه. تو میخواهی قانونی پیدا بکنی ده تا فیلتر رد بکن از فرض شن زنگ بزن از سایت مجلس و بورس از سایت هم شورای نگهبان ده تا از استانداری بکنی از ده جا بی۰ چه ساعتکن تا حال قط مشکل نداره بوده جامعه که امکانات داشته باشه این مشکل نداره در جامعه متعارف ما مشکله این جامعه که تا حالا بوده و قما بودن. پس این هم کاشف از اینه که حجرقدرت ذاتی نیست سعای گفتن. این به امور اجتماعی است و امور اوقلایی است و ذاتی نیست. و ما از کردیم هجیت دائما به لحاظ یک موضوع اییبات باشه. یک نکته ای باشه. مثل تصیل. مثل ازاله وسواس، مثل فرسون رفع اختلاف، مثل تسهیل امر، یه نکته بارد باشه، مثل اختراع نظام لازم بیان. اینی که ما حجیت و تابع خود کشف و ذات کشف بدونیم، به نظر ما درست در نمیه حجیده پریده اشتماعییست. اون تفسیری که اختزام میکنه اینه. این حالا جنبشون تکرار تکرران ما کرده صحبت زیاد در این جرده میکنه. میمونه مسئله مساله لسان دلیل به قول آقا این لیس من نقول ما من چون تفاصیلش نمیدونم بیشتر ما اکثر این مجموعه روایاتی داریم که آیان تمسک کردن به اونها در حجج خبر ما هم داریم سنی ها هم دارن خیال نکنم فقط ما داریم سنی ها هم در کتب اصول روایات زیادی رو اصل اینکه از اهم ادله اونها بر حجج خبر سیره صحابه و پیغمبر افرادو میترسدن و به خبر رایتها را این هست چیزی نیست که فقط در روایات فقط مثلا ما ممکنه حدود 80 تر داشته باشیم باشیم روایاتی که اونا در محصول ممکنه 20 باشه از ما کمتر اما دارن اونا هم دارن با مثال عرضیم یعنی عدد رو تقریباً عرض کرد پس این مسئله است استدلاله به روایات هم در ما هست هم در احل سنه کسانی که خال بخبرن به از روایه تمثل شد. و ما همه یه رو خوندیم. چیز ازش نگوستیم. و روایه رو دست بندی کردیم. از کنیم یه طریقه ازاد توی لبز سقه هست. فس ماله و او فرنه او سقه تول که این سردش با قرادم سهید. یا مثلا نفی نصف مرد رحمان سقه تون آخو با ارمام آدم دینی. این هم بد نیستش ما نه. خوبه. و یا همین را ليس لاحد من موالينا في تشقيق ميريه عنا ما, ما مجموعه روایاتی که درش کلمه سقه و سقاط بود اینها رو جداگانه خوندید روایت داریم مثل مخرج علو امتی اولین حدیثان روایت داریم مثل ارزا بهدی ازوا اینا دیگه توضیح ادش گذشت دیگه نمیخوام تکرار بکنه اکثر این این روایت ليس لاحد من موالینا نفت تشقيق که ظاهرش نفع شک که بخورم از اون نایین و آزی این روایت یکیه سانیه هم نداره روایتی که نفع شک از خبر سر از هم یکیه تنها روایت و این روایت هم سنده ضعیفه جزء طبیعاته سند روشنی نداره و توضیحاتشو عرض کردیم این منشه این اشتباهی که شده این روایت اصلا موضوعش در باب و وکالته و وکالای عماله همسن دیگه حالا مرموم آل نایمی بردم آل نگه شیال کردنه این طبعه موردش در خبر واحده راوی این اصلا در موردش در وکلا یعنی منست در روبات نیست و سقه در اینجا به معنی یعنی وکیل ما مورد اعتماد ما نه سقه معنا معنی سقه در نقل به معنای اینکه مورد وکیل ما و مورد وصول ما مثل همون عبارتی که هزه شده برای این مسلم قد حسنت علیکم ثقاتی اخیر این سره معنی نماینده وکیل ما اصل مسئله ش اینه که مأمونان و دیگران این حدیث ناقص کندن حدیث از اصلا کاملش این لیس لاخذ علیه لا عذر ده از موالین فتشکیک فی ما یرویه عنا ثباتونا الذین عرفوا عنا نفاوزهم سرنا و نحملها الیہین زینش در خود ده تا همون ثقاتونا اتفاق کردن خب الَّذین و عرفو تاز اینا معروفن کسانی که ثبات ما کسانی که به وکالت از ما معروفن الَّذین و عرفو به انا نفاوز هم سر خب چرا تو به خبر واحد داره نفاوز هم سر ونا چرا تو به خبر و نحملوهو ایاهو الیه و امور خودون رو توسط این ها به شیعه میرسونین و نحملوهو ایاهو الیه به وسیله این ثبات ما سر خودمون رو به شیعه ابلاغ میکنیم پس این روالت مبارده که اصولا نازه به حجر خبر نیست که مرحوم نارینی بهش تمثل کردن و اثبات و افاده این کردن که ازاله شک شده این روالت اصلا رفتی به آلم حجر خبر نداره مربوط بکالته و حجیت قول وکیر هم اون هم به خاطر تصیل اموره یعنی به عبارت اخرى در اونجا هم میگه این آقا شک و وکیل من رو شک این شک نکنی؟ نه شک نکنی در آقا بود ربطی به اون نداره پس منابر نه در مقام معنا و نه در مقام لفظ ما دلیلی بر این اصل مطلب که معنای حجی تطریم کش و ازاله شک و این مطالبی که مرموم آزیا بر برشم مسلم گرفتن اون هم گرفتن ما در چیزی نداریم این راجع به این قسمت کار با این بزرگان. پس اما برای این اینی که این حدیث مبارک به معنای جعل حجیت و, و معنا میکنه جعل حجیت و رو نفی شک که ارز کردن این نیست اصلا این مطلب درست نیست از شد این حدیث منحصره به فرد لا اوزاله اهده من موالینا فه ما حدیث دیگری کلن نداریم بله احادیثی که تویش لحظه سقه داریم اما اینجور نیست مثلا ابو یونس بن عبدالرحمن ثقتون اه دینی، این هست که اونجا هم توضیح دادیم مرحوم نائینی به این هم خیلی تمسک می‌کرد این سندش هم معتبره اه خدا عنه و آل الدینی مرحوم مصطفی بجنوردی هم اینطور خیلی نظر مرحوم نائینی رو این بود چون میگه از این روات معلوم میشه که حجیت خبر ثقه محروقانه عام بوده بحث سرغرا بوده ابو یونس بن عبدالرحمن اونجا هم توضیح داده، یارو ما میخواستن تکرار بکنه. اون آخوند عنا و عالم دینی مراد از رسافت در اونجا یعنی ایشون علمش به اجتهادش صحیحه یا نه. مراد خطر واقعی نیست. معالم دین اصطلاح یعنی این چهارچوب تفکرش صحیحه. چون یونس بن به اتها شبهه اتهامی داره غالب قیاسه از امام سوال میکنه که یونس بن رو میتونم من چهارچوب های دین و کلیات این این فقاهتش علمش صحیحه بحثی این نیست که مثلا این روز را نهار بکنه مثلا در بلدوم اتباه بشون این آقل و عالم دین نیست مراقل این روز و کزاله کیف دیل اخوزی یکی این اصح هز رای اینه ول امری و امال امری فه انهو سقتون سغت سقتون فس معله و اتهو فه انهو سقتون که ادعی از بزرگان به این حدیث اونطوری حدیث خودش با بزرگان صحیح صحیح اعلی به این حدیث تصریح کردن از امام عاصم از امام هادی و امام اسدی از هر دو امام از امام هادی راجع به امری اومده از امام اسدی راجع به امری و پسرش عثمان بین سید پسرش محمد نویسی این توضیحات گذشت انس کرد اون سغه اونجا هم وکیله نه حجت خبر سره اصلا ما الان از امری پدر روایت نداره از امری پسر دادی ما از امری پدرند اصولاً بینها بی نظر به روایت نبوده به شاهده این که میگه فس معله و عته او عته که اطاعتی که خبر واحد میگه اطاعت یک منصب فس معله و عته او به قرینه عته ها کاملا واضحه که چه منصبه منصب مراد در اونجا خبر شده به ما و خبر شده این توضیحات گذشتید چون خیلی طولانی صحبت کردیم در محل خودش بذارش ارث ببین از مجموعه روایاتی که ما داریم این خلاصه بحث اجمالاً حجیت خبر سره ثابت میشه خبر موثوقون به لاغ آره. اجمالاً این روایات من حيث المجموع برای نه این سه تا رو توش توجنده سفه بود برای اداره من حيث المجموع حجیت خبر موثوقون به ثابت میشه این روایات به درد نفی کلام سید مرتضی میخوره یا ایده از معتزله که منکر حجیت خبره خبر به درد اونا میکنه. اجمالا خبر با عنوان یک زلزله حجتین حجت این از را کردم میگه توضیحش گزاش نیوالا اما اینکه خصوص خبر سره که مرحوم عارف میگن, زابط یا زابط میگن یا عدل ظابط یا ام عدل ظابط اهل سنت میگه یا امامی عدل که شیعه می مرحوم علامه بر گفتند گفته. هیچ کدوم از اینا در نمیاد اجمالا در میاد که خبر قابل راست هم هست سری قطعی و غلاباری هست روی خبر اعتماد میکنن رسیه قفلی صاحبم هم هست اما حالا اون خصوصیات در بیاریم اونا رو نمتونی در بیاریم اما اجمالا چرا؟ مطلب قابل قبوله جای بحثم ندارم پس بنابراین اینه که مرموم آزی اینجا استاد دارن خود جیت خبر به معنای تطمیم کشف از کردین شواهد معید این مطلب نیست شواهد قانونی معید این مطلب نیست و برکرز هم اگر در لسان دیل آمد که ادعا شده تو این روایت مکاتبه قاسم نعلا همدانی ادعا شده که در روایت آمونده نفی شک نفی شک نه به معنی این که حجیت معناشی نه با اون سرش ما ارز کردیم حجیت به ذهن ما یک پدیده اجتماعی است. در پدیده های اجتماعی تو مسائل مغوله مل... مل... مل... های ادراکات نفسی حساب نمی کنن اصلا این راهی هم را که شیف رفته مکلف یا قرد پیدا میشه یا زن یا شر. اصلا این خیلی دقیق نیست یعنی بحث اغلایی نیست نمیان تو بحث اغلایی صفات و حالات شخصی شما رو حساب بکنن اون جامعه رو به هم میزنه اون زابطه تو جامعه درست نمی کنه بله در صفات شخصی در مقام تطبیق اشکال نداره مثلا شما اعتقاد این آب اون طرف اعتقاد داره این شراب این مشکل نداره د مشکل نداره اما توی امور قانونی و نظام قانونی این رو بیارن روی ادراکات شخصی که ادراکات شخصی اسباب مختلف داره مناشئ مختلفه خود اشخاص حالات مختلف دارن این وضع اجتماعی رو به هم میزنه این نظاممند اجتماعی رو که اساساً نظام برای ایجاد یک حالت اجتماعی سر به هم میزنه این توضیحاتش شدش دیگه اینجا ما تکرار میمیم پس این مطلب و اما بله در به اصطلاح امارات اونهایی رو قرار میدن که خودش که نفسه کاشفیت داره راسته تطویم کشف نیست میان به لحاظ نگاه با نگاه کردن مجموعه امور جامعه قسمی از اونها رو حجت قرار میدن قسمی رو نهالا مخواد صفت نفسی شما صفت قطع باشیم که از استخاره ما زن استخاره کنم فلان حکم استفاده کرد میگه نهایت های اعتماد نکنم اول قطعه پیدا بودم چه ارزش داریم قطعه دقت می‌کنه پس بنابر این دقت بفرمایید جعل و جیت به لحاظ کاشفیت نیست جعل و جهالت به لحاظ یک امر موضوعی است یک نکته‌ای با در نظر باشه تا ج... بله زمینه ها شو کاشفه راسته و سر جعل و هم اصرار بر اون واقعه خوب دقت کردیم و این را هم توضیح دادیم که در مقام تعامل ما با واقع واقع دارای شکل های مختلف نیست یک شکله واقعیت یک جوره. بله زمینه جل چرا اون بحث دیگر پس پس بنابراین ما اگر قول قاضی رو میگیم شما از هر تو میگیم در قاضی در قول شک نکنی این کلمه شک نکنه معنی ازاله شکه به معنای اینه که قولمون حجر قراره قابل اعتماد بو هست و باید قبول بشه اگر چه نکته اساسی او رفع اختراف در جامعه و قول او رو حجت قرار میده باز برایم به با عنوان اینکه که به رجاعه که به واقع برسه پس در باب امارات تمام همه ما واقع خوب دقیق بکنیم تمام همه ما واقع اینقدر این واقع بر ما مهمه که حتی اگر 80% باشه بگیم آن شک نکنیم بکنه 100% چرا؟ چون دنبال واقعی این راجع به امارات اما را به اصول اصلا ماهیتاً فرق میکنه در اصول فرض اساسی بلی نستیم ما به واقع نرسیم به قول مرموی, مرموی, مرموی واقع خوندیم به اصلا دو عالم تصوره بحث حکومت یا تخصیص نیست در بحث اصول اصلا فرض اینه که ما واقع رو نمیدونیم اصلا فرض اینه اصلا اساس کار اینه و لذا ما ارز کردیم هر جا که شما تا آمال با حد دل واقع دارید اون مفاد امارات مورد اماره هر جا که شما تا با حد دل علم و سوارن ذهنی خودتون دارید اصول عملیه است. در اصول عملیه اصلا عملی شما فرض اساسیتون عدم واقعه عدم وصول اصول به واقعه بله در اصول عملیه چون فرض شده به واقع نرسیدید میتونه در اینجا میتونه لحاظ های مختلف بکنه اون سرش اینه یعنی میتونه اصول رو تنظیری قرار بده میتونه اصول رو غیر تنزیری قرار بده دقت میکنه البته این یک نکتهی یعنی همارا ما برزی نکاته گفتینه بسیاره نرم میکنیم ظاهرا مرحوم شیخ انصاری در اولی که رسائل رو نوشتم از کتاب شیخ انصاری کتاب نبوده چهار تا ساله بوده رساله اولیش حجت المزنده بوده که بعد قطعا توش اومده شده علاوه این اسم الا رساله حجت المزنده است و رساله البراءه الاشتباه من اون نسخه اصلیه که مرحوم های آشفانی نوشته از شیخ دیدم و رساله الاستصحاب و رساله تول تعادل و ترجیح یا ترجیح ایشون چهار تا رساله بود بعد اینا رو با هم یه چک کردم ببینم صداشام که موضوع بنده گل مقصد اولی نبود تو خود کتابشه مقصد اول واسانی نبود و وقت در اونجا که ایشون قطعه طریقی میگه و تقوم و الاصول مقام قطعه طریقی اون نسخه اصلی خود ایشان اصول بود ظاهرا در دوره بعدی که ایشون تصحیح میکنه و تدریس میکنه کلمه بعض رو اضافه میکنن. بعض الاصول توی خود نسخه اشکیانی که 18 سال قبل از زحمات مرحوم شیخشون تصحیح کرده 1260ه، اشکیانی همین صاحب بهار در اون نسخه ای که ایشون داره کلمه بعضو در بالا اضافه کرده اما خود مرحوم آشتیان تو بحر جوری معنا کرده که اصول کلا من دیگه میخواهم توضیحش ارزو کنم ظاهرا شیخ در اول نظرش این بود که اصول کلا اون مقام موامقه طریقه و مرحوم آشتیانی هم توضیح داده تو بحر الفوائد و خلاصی اون توضیح رو نمیخواد شما ارجاع باید. پیدا کردنش واسه مشکل باشه. ایشون چون در اصول کلن جریع عملی هست در اصول تنزیلی بیش از عملی است، به لحاظ جریع عملی گفته اصول تقریب مقام قطع تریده به لحاظ جریع عملی لیکن بعدها خود مرحوم شیخ ظاهرن برگشتن و نظر مبارکشون این شده در نصده صحیحی که کردن بعض الاصول که مراد اصول تنزیلیه و در همون بحثم هم ارز کم چون این در کتاب استاد هم چاب نشد مرحوم های اینم جزوه گفت که مطالب سینه سینه من از ایشون از مرموم های بزندی شیدم قدس الله نفسه نحوه می نه از میزای ناینی قدس رو از میزای شیرازی مرموم میرزای شیراز های قضیه تنباکو قدس الله نفسه که در نسخه مسحه شیخ کلمه وز هست البته اینه به نحوه به نسخه نقلی هست خودم تو نسخه مرموم های آشنی دیدم تو نسخه اصلی نبوده هر از کلام بحر فواد رو نسخه اصلی شرده لیکن بعد اضافه کردم اون نکته ای که به اصطلاح اصول تنزیلی رو از غیر اصول تنزیلی جدا میکنه که در اصول تنزیلی تعبدش یک تصرف در موضوع هم میکنه فقط جریه عملی صرف نیست دقت میکنیم ما دیروز ارز کردیم در بحث گذاشته عرض کردیم این در اصول چون واقع نیست واقع همیشه یکیه شکل بردن می‌گره. در اصول چون واقع نیست میتونه در مقام اعتبار اشکال مختلف در نظر بگیرد. این نکته فنیه. این نکته رو خوب دقت بکن. مثل همون مثال گوشت که از کلاه. اگر کسی از امام سوال بکنه من الان بوش از بازار خریدم چیکم؟ گفتیم امام ممکن است بخور. این رو ما وقتی میخوایم بیایم تو علم و اصول تفسیر بکنیم توضیح بدیم میگیم این استقیاد است. امام نگفته این مزکا هست، زکات. فقط وظیفه عملی. خب وظیفه عملی. یه یه از ممکن از امام فرضش هم اینه که الان حال گوش معلوم نیست. یعنی واقعی مفروض نیست در اینجا. فرض دیگر و این است که امام بفرماد به اینکه تو از دست مسلمان گرفتی. اگر این تعبیر کرد این بیش از بخوره. بخور توش هر هست، اینجوری نیست. این بیش ازونه. این توش این هست که این تن تسیه شده. همین که میگه تو از دست مسلمان گرفتی یعنی در اینجا در ظرف شک بر شما این موضوع رو وارد میکنه به عنوان اینکه این موزکاست کما اینکه در همین فاز سوال اگر امام بفرمایید شما در لحظه زل اونجا حاضر بودید خوب دقت بکنید میفهمیم امام گفته اسات عدم کس یعنی موزکال نیست یعنی در اصول دقیقا این فرق بین اساسیه بین اصول و اماراته یعنی اون نکتش این شد چون در اصول واقع نیست در اونجا اون شک رو که ملاحظه این خیلی نکته فندیه خیلی فکر بکنم. اون شک رو که میخواد لحاظ بکنه و علم رو که میخواد لحاظ یعنی اون حالت رو که میخواد بروش ترتیب اثر بده میتونه به لحاظ های مختلف بشه و لذا همین تازگی ما اعز کردیم اینی که شیخ داره شک و ان... همین تازگی از کلمه از مرمون استاد انلوه زد معهول حالت و سابقه اینا خیال کردن در استصحاب فقط لحاظه حالت سابقه شده ما این توضیح داره. تمام اصول عملیه لحاظ شده استصاب نمید در تمام اصول عملیه لحاظ لکه جنبه لحاظه شهر میکنه خود در خود احتیاط شک رو به این لحاظ که شما دیدید قطره خون در یکی از این دو تا انا افتاد در قاعده صبح مسلم اینجوری میاد میگه شما شک میکنید بعد در گوشتی که از دست مسلمان ببینید و خب اون نکته ای رو که ما در اونجا عرض کردیم این عرض کردیم این شک در مجرای اصول این جزء به اصطلاح آیون جزء مقومه اصله مثل ماهیت اصوله سن اساس اصل بر این اساسه. خوب دقت بکنید یعنی به عبارت دیگه اگر لحاظ عوض شد با تغییر لحاظ ماهیتن عوض میشن این نقطه ی اگر در حال سجده به شما گفت بلا قدر کرد یعنی یک جور خاصی رو این حالت ما بین قرائت و سجده که شما شک دارید در این حالت وسط میگه رکوع انجام شود این یک لحاظه اما اگر گفت شما قرائت خوندی هم خوندی یعنی اصالت عدم رکوع, عدم رکوع، این لحاظ دیگریه یعنی به عبارت سالسه اگر بخواد استصحاب جاری بکنه باید حالت قراعت رو شما رو ببینه در حال قراعت که شما رکوع نداشتین در حال قیام در حال سجزم اصال عدم رکوعه استصحاب اما وقتی میاد حالت بعد از قراعت رو میبینه میگه بلا کرد یعنی چی؟ یعنی حالت بعد از قرائت دیده. بس دقت بکنید اون نکته فنی که ما در اینجا با اون اختلاف داریم اعتقاد ما اینه با تغییر لحاظ ماهیت اون اصل عوض میشه. ولذا به تقدیر ما اصلاً نباید نسبت سنجی بین این دو تا شک بکنیم. این نسبت سنجی که الا حکومت باشه یا تخصیص باشه اصلاً نسبت سنجی درسته. چون دو ماهیتن دو حقیقتن مراد از ماهیت در اینجا یعنی ماهیت قانونی نه مصطلاحه دو, واقع... دو حقیقتن دو واقعیتن اصلا دو نه با تعدد لحاظ واقعا عوض میشن یه لفع لحاظ حال قیام میکنه میشه استثاب یه لفع حال لحاظ حال بعد قیام میکنه خب دقیق بکنیم چون اینا نکتهشون چی بود؟ نکتهشون این بود این نمشک و فیشه این لم تا جزو فی ادا تهو فشک این کلمه شک لیسه بشه نصبت این رو بالا تنگازیل یقین به شک اونجا هم شک نصبت این دوتار حساب کردن در اینجا میگه شک ککه لیسه بشه یعنی تو رو انجام دادی در لات هم بازیل یقینه بشه میگه تو در قیام بودی پس رو انجام ده سات تردن رو کو خوب دقت بکنیم اون چه که مرمومه آرزیا و دیگر ها مرمومه از شیخ بی این بر نسبت بینی این فشک و کلیسه بشه لا تنقضیل یقینه به شک کلمه شک در هر دو. ادهی معتقد شدن که تخصیص بعد از مرمومه اصطورم دهن برزرشاد ادهشون میشن تخصیص ادهی قال شدن به تخصیص که لا تنقضیل یقینه به شک الا ادا اینجور میشه قائل به تخصیص شدن ادهر مثل برماغذی ها و خود و استاد قاله به حکومت شدن این شک که لیسه بشه ناظر بلا تنقاضی یقینه به شک اونه برمیداره اشکال این بنده حساب با تخصیل نیکی هیچ کلون نیست نه تخصیل نه حکومت. اصلا در و اصول با تغییر لحاظ اصل کلا عوض میشه و در باب اصول قوامش به لحاظه و میتونه لحاظهای مختلف بکنه میتونه لحاظ بکنه اصل, عمل... اصل عملی غیر تنزیری تنزیلی. دو جور اصل تنزیری هم میتونه لحاظ بکنه در همین حالات سجده که میکنه و در هم داریم تارت هم میتونه بگه امضاقی صداته این میشه اصل غیر تنزیری میگه در سجده شک میکنه تارت هم میگه بلا قدرکت این میشه اصل تنزیلی در اصل تنزیلی در اینجا بخواییم تحلیل علمی شدیم تحلیل اصولی قانونی بیدیم تحلیل قانونیش اینه که قیام نگاه نکرده بعد از قیام نگاه کرده چون رکو بعد از قیامه اینی که میگه بلا قدرکت دیگه قیام نگاه نکرده اما اگر بخواد استثام جالی بکنید یعنی این قیام نگاه کرده یا گاهی اوقات حالا ایشادشون تو معنی اصول خوادامت توضیحش که ما که از نکات خیلی مهم در فرق بین امارات و اصول عرض کردیم اصول از قبیل معنای حرفی ان امارات از قبیل معنای اسمیه مثلا در امارات چون واقع گیده میشه زاویه هم نداره اما در اصول چون واقع مثلا فرضش اینه که واقع نیست فرضش اینه که واقع نداره فرضش اینه که نمیدونه رو کجا انجام بده فرض اصلا همینه فرض اینه که حال گوشته نمیدونه مثلا فرض اینه که حال گوشته نمیدونه اون مهمش در اینجا در میتونه لحاظ بکنه و اشکال ما اینه نیاریم در ادله اصول با هم دیگه همون نسبتی رو که در باب امارات حساب بکنیم این درست نیست این شک غیر از اون شکه مثلا کلوش این لکه حلال حتی تعرف این, این حالت این حتی تعرف این معناش اینه که کلوش این مشکوک آمده فقط شما رو با شک نگاه کرده نیامده حالت سابقه شما رو ببینه لذا این رو با دلیل استصحاب با هم مقایسه نکنیم بحث رو ایده نکته فنی رو شد آیون مثل اکرم الالما ولا تکرم عالم فاسق یا اکرم الالما الالما فاسق لیسه با آلم اینا اینجوری مقایسه کردن بحث من اینه که این مقایسه رو تو عدل و اصول نگاریم چون در ادله و اصول چون واقع مفروض نیست شک که اون شک رو میتونه از زوایای مختلف ببینه از هر ای که دید با اون زاویه دیگه تف... تفاوت ماهویی داره وقتی میگه کلوشه این لکه حلال حتی تعرف اند و حرامان بینه در اینجا بقیرمه حتی تعرف اینه کلوشه این مشبوب هیچ حالت رو نگاه نکرده شما و این شهی که شما نمیده فقط همین نگاه کرده اما اگر گفت این رو مثلا سابقا تسکیه نشد اینجا آمده این شک به لحاظ حالت سابقه بحث من اینه که این تا شک با هم نسبت سندی نواد کرد این یک اصل اون یک اصل با تفاوت نظر و با تفاوت لحاظ ماهیت اصل عوض میشه اما درباب امارات و درباب عمر و واقعیه این طور ماهیت مثلا اکمالعالم لا تکم فصال علمان بقول میشه تخصیص اکل عالم العالم الفاسق لیزه با عالم الفاسق لیس بهاله میشه حکومت علالم الفاسق لیس بهاله اینجا شما مقایسه میکنید درست این مقایسه صحیحه اینا عملا همین مقایسه رو تو ادله اصول عملی کردن تمام نکته اینه مثلا کلش این لکه حتی تعرف این رو نسبتش بالا تنقض یقین این رو با لا یقین به شک که در اونجا مگه بحث ما اینه که اینا در حقیقت دو شکن دو اصلا دو لحازن دو حالتن نباید ما همارو با دیگری ولذا در ذهنیت اونها این بود که قائل تجاوز که شعر قرار میده ربطی به استثاب نداره چون اگر بخواد استثاب بکنه این که آقایی میگن نسبت استثاب با تجاوز چیه؟ چرا ما در مورد استثاب قائل تجاوز مقدم میکنیم؟ که روهایی که گفته ایک حکومت. جواب اینه. اگر بخواد استثاب بشه باید حالت قیام رو ببینه معناه داری که استثاب اما قاعده تجاوز بخواد جاره بشه اگر حالت قیام نمیبینه حالت بعد از قیام رو داریم میبینه توجه رو این نکته فنی اینه در دو تا حالت اینا رو با هم دیگه میسنجیم کنستان چون تخصیص یا حکومته؟ یا دو تا ماهیت مستقل یعنی ماهیت به لحاظ مقام جعب اصل یعنی نه به لحاظ امور هی حرف ما اینه که این دوتا رو مثل اون مثال اکتمل علماء حساب نکنی ولذا در ذهنیتشون این بود یک جای استصحاب جدیم میشه یعنی حالت سابقه رو دیده یک جای قاید تجاوز جدیم میشه یعنی حالت سابقه رو ندیده اصلا استصحاب قوامش بینه که حالت سابقه رو ببینه شک قاعده تجاوز قیوامش اینه که حالت سابقه رو نبینه یعنی وقتی میگه بلا کرد یعنی من قیام تو رو اصلا قیامو نمیبینه بعد از قیام میبینه خب دقت بکنیم صحبت اینه با این تعدد لحاظ و با این تعدد به حساب روز ما نگرش اصلا اینا دوتا یکی نیستن که ما بیم نسبت بین این دوتا رو بیان بکنیم دو نحوه لحاظه ولحاظ در اصول مق چون در اصول مفروز ادله رسیدن به واقعیت فردا ان نتیجه نهاییشه اعلام می‌خونید. کلام واقضیا نشه موس بکونید. بحث بعدیش فردا ان و الله علیه